قاهره مصر سی 1964 هزار و و و دائم سنگینی میکرد. انگار چیزی روی دلم گره خورده بود که از هم می شکافت بعد در هم می پیچید و به شدت سینه را می فشد. شب و روز این احساس با من بود و رهایم نمیکرد. دو روز بود که صبح با حالت تهوه شدید از خواب بیدار می شدم. می دانستم اینها نشانه چیست اما در مقابل فکر آن هم مقاومت می کردم. به خودم امید می دادم که دلیلش چیز دیگریست. هر چیزی که فقط باعث ترس من نشود. اینطور برای خودم تفسیر می کردم که این تغییر مزاجم در واقع واکنش من به رفتارهای پست جناب حاتم است. او همیشه می گفت ماجره هایش مدت است. دیروز برای آخرین بار او را دیدم. با هم غذا خوردیم. وقتی شروع به حفظ زدن کرد چیزی نمونده بود یک سیلی به صورتش بزنم. لیلیان، میخوام یکی از دوستام رو بهت معرفی کنم. فکر کنم روزهای خوبی رو با هم بگذرونید. نمیتوانستم باور کنم تا این حد وقیه باشد. آن تهمانده ازت نفسی که در وجودم باقی مانده بود، له کرد. به شدت احساس خفت و خاری میکردم. گریم گرفته بود. من زیاد احساساتی نبودم. وقتی هم که از جا پریدم و تصمیم گرفتم ترکش کنم، نقش بازی نمیکردم. دیگه نمیخوام خودت رو ببینم نه اون دوستای نفرت انگیزت رو آن لحظه به شدت عصبانی شده بودم اما الان به خاطر رفتاری که باهاتم داشتم کمی خودم را سرزنش می شاید داشت با من شوخی می کرد گاهیطوری با من شوخی می کرد که اصلا نمیفهمیدم منظورش چیست خوب که به موضوع فکر کردم به نظرم آمد در بهترین حالت حالت معنی حرفهایش این بود که او به عنوان یک مرد ابتدا به من علاقه من شده بود و بعد از اینکه به هدفش رسید، مرا مثل یک عروسک کهنه دست دوم دور انداخت و بدتر از آن، با وقاحت مرا به فرد دیگری هدیه کرد. پشت میزم در قسمت پذیرش مطب دکتر دیبوش نشسته و منتظر اولین بیمارهای امروز بودم. تصمیم گرفتم در پایان روز درباره وضعیت خودم و این درد شدیدی که داشتم با دکتر صحبت کنم. شاید چون امیدوار بودم با گذشت زمان وضعیتم عادی شود. مشورت با دکتر را عقب میانداختم. هرچند نیازی نبود دکتر بخواهد چیزهایی را بگوید که یک زن بدون هیچ نشانه ای آن را درک می کند. مثل هر روز صبح دفتر پذیرش مطب شلوغ بود و صدای پچبچ بیمارانی که منتظر نوبتشان بودند همه جا را پر کرده بود. جالب این که درباره همان کسی حرف می که برای ملاقاتش وقت گرفته بودن. اکثر بیماران دکتر دیبوش آلمانی ها و سوئیسیهای ساکن محله المعادی بودند. کار من یک نواخت و تکراری بود و به همین دلیل گوش دادن به گفتگوهای تمام نشدنی آنها به سرگرمی مورد علاقه من تبدیل شده بود. آنها درباره زندگی و شخصیت کار دیبوش و دلیل آمدن او به مصر صحبت می آنچه که بیشتر برایشان جالب بود فاصله گرفتن دیبوش از اجتماع بود. او و همسرش در فعالیت اجتماعی شرکت نمی‌کردند. در طبقه بالایی ویلا خانوادش سکونت داشتند و مطب در طبقه پایین بود. هیچکس کس آنها را در جای دیگری نمیدید فقط تعداد کمی از آلمانی های علمه به می توانستند آنها بروند که البته تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رفت. میگن مجوز در آلمان را ازش گرفتند برای همین هم اومده اینجا، این رو از همسر یه پزشک مصری که تو خیابون شماره نه زندگی میکنه شنیدم. خانم هسلر که با دوستش به مطب آمده بود، شروع به صحبت کرده بود. این حرفا درست نیست، همسر مصریه و یه افسره. اون میگه دیبوش دانشمند بزرگی هست و برای انجام تحقیقات علمی مهمی به اینجا اومده. این مطب رو هم فقط برای سرگرمی زده، در گوشه دیگر اتاق یک پیرزن سوئیسی با صدایی که به نظر خودش خیلی آهسته بود شروع به صحبت با بغل دستیش کرد اما همهی حرفایش کاملا واضح به گوش من می رسید همسایهش از اون دست... از دست اون به یک بیمارستان دامپزشکی شکایت کرده به نظرم اون جسد یه سگ کوچیک رو کنار باچهاش پیدا کرده بود پیرزن کنار دستی جواب داد یه همسایه جدید به آپارتمان ما اومده که طبقه هم کف ساکن شده و من مطمئنم اون جاسوس اسرائیله. در طول شب بارها صداش رو میشنومم که داره با بیسیم کار میکنه و حرف میزنه. فکر کنم برای دستگیری دکتر اومده اینجا. سپس ادامه داد. شنیدم اون یکی از مجرمهای جنگ جهانی هست که به اینجا فرار کرده. بس کن بابا جنگ جهانی 20 ساله که تموم شده. زن سکوت کرد و پیرزن همه چیز دان دوباره شروع کرد. اون دانشمنده در زمینه علم موشکی دولت مصر اون رو آورده اینجا تا بهشون کمک کنه موشک بسازن. این بار دوست پیرزن از این فرصت برای تمسخر او استفاده کرد و با صدای بلند خندید. دانشمند موشکی حتما تو هم اومدی اینجا که اون تو رو بفرسته فضا. یک زوج اتریشی در گوشه دیگر اتاق نشسته بودن و به تابلوهای روی دیوار نگاه می کردن. مرد همونطور که, ب... که چشمش به تابلوی روبرویش بود به همسرش گفت دیبوش در واقع فکر میکنم فقط برای اینکه خرج خانوادش رو بده مجبور شده تبابت کنه. همسرش جواب داد بله واقعا هنرمند هست. اون گوش های تو رو درمان کرد. اون هم بعد از این بعد از اینکه اون همه دکتر رفتی. اون در هنر پزشکی واقعا مهارت داره. سعی میکردم به گفتگوهایی که دورو برم جریان داشت توجه نکنم. باید گوش هایم رو غفل میکردم تا گفتگوها رو نشنوم. و به وضعیت خودم بیاندیشم. یک فراری تحت تقیب در یک کش... کشور غریب. حالا هم یک مهمان ناخوانده بدون دعوت من و بدون میل و خواسته خودم تصمیم گرفت در وجود من لانه کند من از آن آدم نبودم که همیشه از زندگی خود شاکی هستند اما الان واقعا در وضعیت بدی قرار داشتم سعی کردم هرچه نیرو و توان داشتم جمع کنم تا آرامشم را حفظ نموده و افکار منفی که وجودم را فرا گرفته بود از خود دور کنم نباید اجازه میدادم این فکرها ازیتم کنند توجه هم دوباره به حرفهای آن دو پیرزن سوئیسی جلب شد. این بار حرفهایشان انگار درباره من بود اون از همسرش خوشگلتره احتمالاً احتمالا معشوقه آلمانیش باشه نمیدانستم. باید خوشحال باشم که در مقایسه زیبایی زنانه برنده شده هم یا از اینکه مرا به عنوان معشوقه یک آدم فراری مثل خودم میدیدند ناراحت شوم. حرفها و حدس و گمان این افراد تمامی نداشت و آنها نمی بفهمند چرا این پزشک آلمانی به جای اینکه از تخصصش در کشور خود استفاده کند به مصر آمده است. حتی راهبه های معبد آلمانی در المعادی، سوگند میخوردند او یک کاتولیک مؤمن است که هیچ وقت مراسم روز یکشنبه را از دست نمی‌دهد. وقتی این حرفها را میشنوم به یاد راهب ای که با دوستش حرف میزد و شکایت میکرد که دکتر دین ندارد چون حتی یک بار هم به کلیسا نرفته است اما با وجود بیدین بودن دیبوش او را به عنوان دکتر خود انتخاب کرده بود همه ی آنها همیشه به مطب او می و علا همه گله و شکایت ها او را به عنوان یک پزشک حاضق آلمانی قبول داشتند. حتی آنطور که من متوجه شدم اکثر ساکنان غیر بومی محله جنوب و همینطور مصری های ساکن آن منطقه نیز همین نظر را داشتند. صدای پای کارل را شنیدم که داشت از پله ها پایین می آمد. با عجله وارد اتاقش شد. من هم طبق معمول به دنبالش رفتم و لیست بیماران را به او نشان دادم. با خانم هسلر شروع کن. برگشتم تا از اتاق خارج شوم. با همان عادت خلاص گویه همیشه گیش گفت: بعد از ویزیت امروز می‌بینمت. برات یه کار پیدا کردم. وقتی بیرون رفتم دیدم عمو عبدوسائی مقابل میز منتظر من ایستاده است. این برای دکتر دبوسه. نگاهش کردم و برای هزارمین بار تلفظش را تصیح کردم. دکتر دیبوش. لبخند خبیسان نیزد. دندانهایش نمایان شد. دندانهای سفیدی داشت که در چهره تیرهش می درخشید. چین و چروک و زیبایی روی پوست تیرهش نقش بسته بود. چهره نرمال و دلنشینی داشت. به غیر از بینیش که بنا داشت از حالت طبیعی خارج شود. روپوش سفیدش مثل همیشه تمیز بود و بوی خوبی میداد گویی همین الان از حمام آمده بود بوی عطرش فضا را پر کرده بود با سر به پاکت زرد رنگی که دستش بود اشاره کرد و دوباره گفت این برای دکتر دبوسه. یک لحظه خواستم دوباره تلفظش را تصحیح کنم اما با دیدن لبخندش از این کار پشیمان شدم چون معلوم بود میخواهد این شوخی هر روزش را رو کش بدهد با سر اشاره کردم می تواند پاکتش را بردارد و وارد اتاق،, اتاق دکتر شود تصمیم گرفتم که اجازه ندهم با این حرکات بچهگاناش مرا تحریک کند با قدم های آرام به طرف اتاق دکتر رفت ضربه آهسته ای در زد و بدون اینکه منتظر جواب باشد در را باز کرد وارد شد و در را پشت سرش بست از پشت شیشه مات در اتاق شبه او را میدیدم که مقابل کار ایستاده بود دکتر هم از پشت میزش بلند شد. تعجب کردم وقتی دیدم به جای اینکه به عمو عبدو نزدیک شود و پوکت را از او بگیرد، از او فاصله گرفت و به طرف پنجره رفت. چند لحظه بعد، همه جا با نور شدیدی که از اتاق دکتر می آمد روشن شد. سپس چنان صدای مهیبی شنیده شد که نزدیک بود مرا رو از روی صندلی به زمین بیاندازد. از زمان جنگ دیگر چنین صدایی نشنیده بودم. همان زمان که در برلین بومهای متفقین یکی یکی بر سر ما می بارید و نزدیک خانه هایمان منفجر می شد. به دنبال انفجار صدای ناله بلند با صدای خورد ها در آمیخت و بعد صدای افتادن جسمی روی زمین به گوش رسید.